عزیز و خوشویست اسلاو تن لی بی خوشحالین بو امشویش لبشی هفته و ششی خون نوی کتیبی چشتی مجوری هجاری مکریانی حتی نولاتن فرمون لگلمان من هجاری مکریانی، نوسی نوی بسرحه تکانیجیانی خوی داده نوسی، لیوجه، لوی لیو که زور بالا بلندی بسر و سیمه نرد بولم ک ایرانی کرمشانیه و پنه هنوه، نوی داریوش بو، پش چند روش اگر رویش دفتر که لیبجه مابو، بخطه که زور نخوش چن خاطراتی خوی نوسی بو که سروبنی خاطراتی متحی دزگه شهنشاه ایرانو، تا بگلی کوردی روتو کسف بو پش ګوتین در داریوش ګیرا او ساواک داوی کاتو متم او خیرو برکتیان بده رنگ خویان حزبکن کنان ده نوا دګل بارزانی چوینه سیرانی چې چای لخوار و گرماو لو برز سرمای چې زور سخت بو پاش چند سال توشی رواسان بوم کوک زمان فقیتیم بو خوم حل کنم فلمسک کوم لچاوداوریو بی وی زمان جوانی ومن می سینمای حتاو برچاو. نیو روبو لسر من دلرزیم غرم ده نو کونه چرداغ یکی چول جلماین یکم دید پالوکم کردم المغو جلوک پستک پشتی ده و راکشم ملا مصطفى سری کشا وای دیتم زور پیکنی. وتم قربان سرمامه. اجازه بده بر برو مغو ده گرم گئی ما برانبری نوانده خلکی ده حتی بونا پیشوازی برزانی چلا داری که خواری بری کن بسر روبر را انگو تبو پیت لسر دا انا دلارزی. د ابو اوسری بگرن تا د فریاو و حوالانی گین سر رو بسد درد الله الله پرینوا به ملائکې نا ودمگو ما موستا افرین بوته مشق پرینوا لپردی د سیرات پکردین روجی منو مل باقی بر تر دا غراینه سر جادی لای چومن دنیا هیڅ چول بو لبن دیواری کو نه قاوه بو بر سیبر کورج هات رابوری اشاره با لایتکی ملاباقی کرد که در برگی خاکی گیره او با پشتین دیده شار بود توان. ویتی؟ ما مستا ملاباقی اوش چیا؟ اویش ویتی؟ ها ها ها ها ها لووه سلاحه که سرم پیه برو ویتیم بود رگیدش که نیجا دل تر و ایزانی زرنات پیه او اگر حیرانی که بولیده دلی خوش دبه زیرکی که خون تازه لبغده دوکانم دانب دگل دانش چند ساله بود یک حال برابر بین روزی کره خوشي زور بگرمی کردم منی شوتم آی که کشنی خبری که کحمیدی براد و توی حمیدی چیو برای چی و تم که ک توماس هرنیت و توی حق سه قار چند پیک نام ناسیا و کره شیخ داره خورم و تم آی راز دکه ببخشه ایشو توی به دلم زور لیت ایشوا اینتر نشی آوژار مندلابیر بچه تو و تم خاطر جنب. روژ یک لیداری مابانی عام یکه کاتلم ندلی خوندو وتم بروانه من چن نازیر قبوم او مزهره چون ملګورابوحات سلامی کرد کوکایکم بو بان کرد وتم کاک چونی خبری کاک حمید براتشه هستا گوتی قوتي... شرطه کوکات ناخوم تو دیار د من آشناد نبم غلطم پیکی پیم گوتی من کور شیخی دار خرمه رویشتو نګرو لشورج دا روز یک لشقلاون نانی نیورم خورد کره کی مسیحیم کرد بو و تویان پولاکتان، آو افندیا دایب، لیمروانی بپیکنی نواهد. و توی که کجارتونی، و تم جار تو خوابیم باله. تو کره شهید در خورمانیت، و یعنی چی؟ اگر وابه نام ناسیا من مسهرم، و تم دیکه که برات شونه، و زور باش او سلامت لیکا. نقل خاموش شهید در خورمان بچه روا، تیر با زیرکیا کم پیکنی.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 امر که خوارزه حاجی محمد شیخ رشید بود، دگل صوفیان دجید، سید علی فقیر که ساده بود، مصطفی که همکاریکاری اغییتی زینوی بود، شیخ او که تکچیکه که رضای دایماوی جن بود، کنزیکی پنجا سالک لشیخ کمتمنتر بود، مندالی لشیخ نبود، بلامزور که بانو خان بود، دستو پختی لوپر پسندی دود، نفیزو من پیمان سیر و که شیخ لسر او همو میوانداری و سخاوتی زوری حزل دعوت دکر هر روژه با دوکنداری که دگود که دعوتم دکی تاجیری زینویش بناوی دعوتی شیخ گیز که کی که یکیان لیه نو پنجا کسیان پیوا دعوت دکر دوی پازه شو به نیازی کیستانی بردپانی بناری قندیل چوینو میوانی شیخی حاجی رسول بوین که آغای گوندی قمترانی بیتوینو خاون پیانج روز هاوین رابر دبو هرچند شول ناو وته کی زور کپ داو لبر اګرو به پیخف زور نوستین تا به یانی لسرمن لبنچنګی خومنده به یانی هم او بوونه صاحب من بونشوره، نه دو قرآنی خوانمال خوان مال دو شو ماینه ما و وتی اگر برو خلات زادرن بکیستاني قندیل دا زور نزیکا بلهم 4 ساعت به سر بفرده درو بچین نشین ناچین سبيك وریکوتين توشي شي و اليكي پر بفر بون کموده 20 متر نه ده لبکا پلکان لپکا کوج دا کنه بنیو ساعت بخی ر درچین حلی کردوره دنیا لمج تاریک دهات د من مند لرزین هموی ساعته کی نبرد بدیوی اینیو مجیننده هاتین لو دوزستان سخت لم دیو اینیچو لبرمیش و مگزوگرمه ورز بو بوین هر دوک من استر سوار بوین نیوارو چوین خوشکان و شوگهی نوالزه بوینمیوان شیخ رضای گلانی که کون افسر پولیس بو استرکه من فیر بازدان بو قتل دراوی احسایی نده پریاوه ام حزب خیوه ما نیده گرت دبوای کندال جوگه زور پیدا باز بدا لسر برو جیرانیش با انقصد برده که بلندی ادیتوه خوی حال ده. ده. او سفرگیم و قلادزا جلال احمد توفیق قدس تو دایرکی زور کسی دیگه صاحب لاغیم دیتن دجال میناشم چونه روب ولایکاک سعد حاجی باعثاو سید محمدی آجیکندو چند کسی کتر لخزمانیان سیدشین خلاصه شم لودیتو نور رجان مایو زورم خبر لیپرسین کبوه من تازه بون پلام آمی خوش بو هر کسی لیم دپرسی چونه دیود پیریان دویندیتو ما نور رج رابورد تاریخ للا آونا گر. چنچاریک چون اقیستانی جمال دین و مالی حاجی قای محمود دعوا. یوران دجل کاک سعد دجل رامور شوالو من بجل تو جفانگ راد بوده. عونی بو. و سفیق قاسم لقیستانی جمال دین بو. راجناد دچو سره خل رشی سوئیس نیان هرکار و کوردی کردی ایرانی ادید تلفی شهرشایل لاکرد. وچيان او چوت تاران میوانی ساواک بو روژانه سه بوتل ويسكي لدي زيون لسر اواد دريان كردوه يستا كه تاريخي شابه كرداري سويسني دكه به همي د شابه ته او دو بار پچته سر او آخر را چوره حسني كوري رحيم قازيم دي تازه بو بو پيشمرغه لايوابو پيشمرغه دبي پیسو چلكنو رودبه کالشري كه د پيدا بو سگيلي اتوره به هزار يرا كهو شكان خوممدايه که هر لکه لکانی چاقتر بود، چوب و لقالت زوج جدی روز جک لکوستانی جمال الدين بوم که کیوسف میران کردبی سرگردی ل ارتش دابو دجال با بکر پسداری لکیو دیتیانم. و تیان حزب دلی کرمان دجال که منش وتم نه تو متوجه کردند. بیکار رای بیارم. و تیان هر دجال خو ما ندبرین. چه ما مكتب سیاسی شو. حبیب و محمود و تیان دبل رجنمای خبرات دا کارب من لغات گیری روزنامه عربی دار زور ماهرم. اگر قبول دکن غلط گیردم، اگر خوشم با کردیشته کم نوسی لسر حسابی کار کم نبی. چون کل وعنه اونی من دینو سمرع زیتن نکو مجبور نیم به هوایی کسب نوسم. اونی نتانا وست معلق قلب سرو ساحی باتی. پیکه تینو بنوی غلط امرم با نوسرا. قراریج درم منجی پازده دینارم لبقدای بودن بامند علکانم چابخان لاسونیابو. شما به احمد توفیق شریف زاده، سالاری حیدری، سلیمان معینی، حمدامین سراجی، ملا سید رشید، حسن اسحاقی، ملا قادری لاچینی، مام علی اجامو زوریتریش که استال لبیرمنین لوی بون. سونیا زورگونده که خوشو برزو دارو باره، کارگی چابخانش شش نفر بون. برلوامن بچم یکی تری بناوی او رحمانی ملا محمود بسر را گیشت روش یک ملایق لقلات زوحت بو چوبون جگه چپخانه نشنده بو و سبیره تیاره بومبرانی که خستی کرده بو بلام بسلامت درچوبو لسر جوگه اوی که پر داروبار بار سکوی که زور خوش لبرد حل بستره بو براستی شعره نبو روشانه جگه لکاری روشنامه بوخم شعرم دروسی و فکرم دکرده با حزم ندکرد کذبیت لام بلام کرگل لکوالم ندبونه با ترجمه خی سراتای بروموکریانی شم لوهوندو لپاشان لشوینی کیتر تاوم کرد چن مقاله و شعر شم بروجنامه نوسی و چاپ دکره شعر مرملکنیم یک یک بولوانو مقالات کم نماوه روژیک خوان ملککی دوري جوګه کا هات ګوتم ما محمد بای ربع دینارک تریمن بدا بسرداری کی زور بر زوباری کوت ک میوی له وتم ما مدکوی هیڅ نه به کلا شکان دا کنه بو پټن وایا منیش وکوي او او دارب ومن وگجا دوايا تو زکيتر سرکوت دارده هاتو مام احمد کوتو دنجي لبرنهه تدر خو افریقا زور جردم دي پیشمرګکان د هاتو نانیوش ک انور دګر تو چشت یا نه اخواردو درویشتن کوت مشوینن خویان بناو درکه تو ترکان داد کردو پنجوین شمتریل کیند خوارد کشانه بدرکانه و حل ده بس لسونیه و هاتوی حل شوم زور دکرد که مكتب سیاسی لیبو تیاره حجمینی له موکس حل ګټبو کشیش کی آشوری زور پیر منده گلبو زور له تیارې د ترسا کونیکن بو کولی بو روج تیاره تو ابونا بیداری رای کرد بو کن پیش او سگی خو ته خزانده بو لیمرنده بو اویش حوا دکرد رمضان ور علی سوری خلقی گوندی کانی سیوی گورکان پیشمرګی حل شوب پیوی کی زور عذاب کله دوای دا د گل سید فتح او چوارکز لخی حاجی کیمی پشت قره یو اس شهید کړه علی آګه لکپران دبو بو جراموا شیخ محمد هرسینی کی علی دی نصرینی علی چن پاسونه کی کپرانی کو کردو تو سخن غانیان بوبکا وتبو کرم پیشمرګ نابې بترسی نعبی حوالی خویله تن جنا د بجی وای دانیان ایسته تیار به د سره ربکه یک مان بریندار به ناب ال راکین دبه رزگار کینو به تیار نه دین لو دمدا که او صدقات تیار د شیخ هموان دا حالات د دوت کروشکو تاجیت بردراوه چو پش داره بروی کو هر هرای دکردودیدو حال مین حال مین نکنه حال بینو رابکن اوان شو تبو یان کاک شیخ بخو امش چاول جناب دکین ا دی لو کاته د هم ممستانی مکتب سیاسی و تنفیزی لنو درکود داری زور چه غور ده کپری که انکرده بود که هرگیز تیاره نیدادید نیوار رویگ لین بوم تیاره قرماندی لکپر و حالاتن بو نو بردلانی نوچم حرام کرد تیاره روییو ورنوا چه یک لکپری سالح یوسفی بودن و تم دلم خبرده ده کی که ناسای هیا هستم حسیری بنخوم حال دایو ماریکی تده بود شر لدوری قلاتزه بر یاردره مکتب سیاسی و چاب خانه بگویزنوه بولای ناو دشت. دسته دسته بر یاده کرد. بیانی هاشم اقراوی به هنکه هنک هاتوا کشو توشی لشکری عراق بونو، حوالکانم بیسرو شوینن. لکن سنگر جیپکی یوسف میرانو خویت دابوا توشی چرای جیپک بو بون که روبروینده. داب زیون که اگر دوجمن بو شرب کن، هاشم با حالاتن شش ساعت بیوچان حالات بو که او خ برمن کرد معتبر سیاسی چواسلئو منوکاکسامیش برای کردن بولای بالاکیاتی. سال یوسفی کرپو از پرستی رادیو که تازه پیدا مان کرده البته او رادیویا رادیوی دنجی کردستانی عراق بود. لپشت ولش ل نو جنگالگ دا که گوریگادو پیدا گود چینکا پر انو. دکل عثمان سعید و دلشاد مصرف جلال عبدالرحمن که هر سه گوینده رادیو بون لکه پرک دا بوینو چند که پرکی تریش هبون، نانه بو پیخور نبو، دوروبرمن همون رزبون، خوانیان بوبونه جاشو بجی مابون، جاور تری رشب خو، همیشه سواتی تری لکه بو، کس نبو روش چند جار زرگتی پیوانه دا لتری رشکه و رزبوین ویت من باب چین تری سپی پیدا کن، لرزیک پیدا من کرد و قرطال من دا گرد، کابره که با تیلاوه تو ریکن تیالا قط من دک من جوابی دمو کابره سنگیده سرتیالا و تو علی کاکا آور رزش تن برزی چشان زنی و قط منخر قط من رزی پیوند و بتی رادیوی هاتویی و تو دعفر وابه گرانی خوشوییست، لیره دا حتی نکوتایی هفت هفته و چشی خویند نوی کتبی چشتیم جوری هجاری مکوریانی تا بشی کترو لشوی کتر دا پیتان دگی نوا شوطن آرام، جیانتان شادو بختور به